بسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديت هذي منحاوت روائع الخصالي راديوية صداية جند الله روية موجي يكسددو أعشاري هاف اف ام الخصالي قد بكت فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال رادیوی صدای جنداله برنامه از جمعه تا جمعه را خدمت شما تقدیم می نماید این برنامه شامل مطالب دینی، علمی، خبری، ادبی و تفریحی بوده روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به نشر میرسد. Wa Fabumuya Rabbi Anzali Rahim Hamdu Sanawsi Fat Bazati Yaktawbi Hamta, Waduru Salawati Firawan, Barrasuli Muazami Islam, Hazrati Muhammadi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. شنواندگان عزیز با برنامه از جمعه تا جمعه خوش آمدید خدا کنه که جور و صحت و سلامت بوده باشید قبل از اینکه به مطالب برنامه بپردازیم در قدم نخست اخبار یک هفته را می شنویم دمدیم علیها ربنا دم دم علیها ربنا دم دم روزی شنبه به سیاک شوال گزارشات از علیت پروان می یک گزمه پلیس اجر در ولسوال سالنگ مورد حمله مسلحانه قرار گرفت خبر می افضاید گزمه دشمن ساعت 8 و 3 دقیقه خفتن در دهن سالنگ جنوبی منطقه اولنگ تا یک کمین مورد حمله قرار گرفت که در اثر شش پولیس جا با جا کشته و بر علاوه یک اراد رینجر نیز کاملا نابود گردید در اثر یک در چین 63 تن کشته و حدود 715 تن دیگر زخمی شدند خبرهای رسیده از ولایت پروان هاکیان، قماندان جلب و جذب ولسوالی جبل سراج بنامی شاو بری خان با هفت از کرد در یک حمله مسلحانه در ولسوالی شینواری آن ولایت کشته شد گزارشات از ولایت کابل می‌رساند یک یک زرهدار از اساکر اشغالگر در ولسوالی قرباق آن ولایت شکاری ماین گردید خبرهای رسیده از ولیت بغلان می‌رساند، یک اراد موتر رنجری رینجر اصاکیر ارده اجیر در بلسوالی پل خمری این ولایت شکاری ماین ما گردید. گزارشات از ولایت پروان حاکین پایگاه اصاکیر کوریایی در چارهکار مرکزی، آن ولایت مورد اصابت دو راکت قرار گرفت. روز یک شمبه 22 شوال، خبرهای وسیله از ولایت تخار حکین مجاهدین بر یک پسته دشمن در ولسوالی بنگی آن ولایت حمله مسلحهانه نمودند که در نتیجه تلفات بر دشمن وارد گردید. در اثر ده حمله انفجاری در ایلاق حد یاقل 60 کشته شدند از ولایت فاریاب خبر رسیده است که ملیشه های اجیر اربکی بالای موازی مجاهدین در چندین قریه ولسوالی پشتون کود یورش برده که با مقاومت شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند در این درگیری که از صبح روز شنبه آغاز گردیده بود روز یک با واریش تدان تلفات سنگین به های اجیر و پایان رسید باز هم یک شنبه از ولات قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز یک شنبه حوالی ساعت 5 بجه یک تانگ اشغالگران خارجی در ولوسوری جرای هدف انفجار ماین قرار گرفت در این انفجار تانگ دشمن کاملا تخریب گریده و چهار عسكري دشمن در آن کشته و دو تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند روز دو شمبه 23 شوال، خبرهای واسیل از اولیت قندس یا یک کماندان اساکری ارده اجیر به نام عبدالرزاق در مرکزی آن اولیت تا یک حمله چرکیز شدیدن زخمی گردید. در اثر این یک بم در سوریه هفتهتن کشته و تن دیگر زخمی شدند. باز هم دو شنبه در اثر ما این ماین در مربوطات میدان شهر اولیت میدان وردک سی ازکر اجیر کشته شدند. خبرهای رسیده از ولایت بغلان حاکیان یک رنجری از asker اوردی اجیر در ولوسوالی بغلان مرکزی آن ولایت با ماین تصادم نمود در اثر این انفجار رنجری دشمن تخریب گردیده و یک اسکر در آن شدیداً زخم برداشت در اثر یک حمله استشاده در ولایت خندوس 15 تن کشته و بیش از 8 تن دیگر جراحت برداشتند گزارشات از ولیت جوازجان می که یک گزمه دشمن در ولسوالی آقچه آن هدف حمله و انفجار قرار گرفت. خبر می افضاید دشمن حوالی چار بجه روزی دوشنبه در قریه چکوچ آن ولسوالی مورد حمله مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و نبرد الا ساعت نوع بجه خفتن ادامه داشت که در رستریان دو اسکر جا بجا کشته شدند. مسئولیت زندان بگرام از نیرهای امریکایی به حکومت افغان سپرده شد. از حولت غور خبر رسید است که روز دو شنبه مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری الفارق یک اراده موتری نوی رنجری پولیس عجیر را در مربوطات مرکز ولسوالی تولک هدف انفجار ماین قرار داده اند. در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردیده و پنج راکبین بین آن کشته و زخمی شدند. باز هم قندس گزارشات از ولات خندز می رسانند که در اثر نبرد ذات البینی یربکی ها در ولسوالی داشترچی آن ولات یک اربکی کشته و دو تن دیگری آنان شدیداً زخمی شدند. تا برمی افزاید نبرد ساعت 7 بجے صبح روز دوشنبه در منطقه غلجیان آن ولسوالی بین اساکیر پوسته سرتیپی صورت گرفت که در اثر یک اربکی به نام لعل محمد کشته و یک تن دیگر که گل نام داشت با فرزنده شدیداً زخمی شد. در اثر انفجار مآینی در ولایت پکتیا، 4 عسکری امنیتی ملی کشته شدند. روز سه‌شنبه 24 شوال، از ولایت قندهار خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته، حوالی 3 بجه، گزمه‌ی پیاده‌ی عسکری اشغالگر در منطقه ارماری و لسوری پنجوایی هدف انفجار مآینی قرار دار قرار گرفت. در این انفجار 6 عسکری دشمن جا به جا کشته شدند. در اثر فایر نیروهای امنیتی در کشوری مالی 14 تن کشته شدند. در اثر انفجار یک بم در سوریه هفده تن جان باختند و 40 دیگر جراحت برداشتند. باز هم سه شنبه از ولات بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 4 بجه یک تانک اشغالگران خارجی در ولوسوری سنگ آتش هدف انفجار ماین ما قرار گرفته است. در این انفجار که در منطقه جیلوگیر صورت گرفت تانک دشمن کاملا تیکه تکه گردیده و پنج عسكر اشغالگر در آن جا و جا کشته شدند. از ولایت هلمند خبر رسید است که دو تانک اشغالگران خارجی در بلوسوالی گرشک این ولایت در طی انفجارات ماین تخریب گردیده است. تفصیلات حاکی است که یک تانگ دشمن شامی روز گذشته حوالی ساعت 9 بجه در منطقه کاژیان از مربوطات زنبله هدف انفجار ماین قرار گرفت و تانک دیگری نیز صبح روز گذشته حوالی ساعت 10 بجه در همین منطقه با ماین زمینی تصادم نمود. در این انفجارات هر دو تانک دشمن کاملا تخریب گردیده. و تمام راکبین تانگهای مخروبه کشته و زخمی شدند گزارشات از حالت پروان می که مجاهدین امانت اسلامی میدان هوایی بگرام را دو بار مورد حمله راکتی قرار دادند خبر می حمله ساعت دو سی دقیقه روز سه شنبه صورت گرفت و دقیقا به هدف اصابت نمود که در آن به دشمن تلفات سنگین جانی و مالی وارد گرد اما در مورد آن شواهدی بدست نامده است خبر ادامه دادم میگوید که ساعت یک بجای شب سه شنبه میدان یاد شده مورد اصابت دو راکت قرار داده شد و دقیقا در داخلی کارنیزیون اصابت نمود که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما شمار آن به دست نامده است طبق اطلاعات رسیده از ولایت پروان حاکین در اثر انفجار ایمان شده مجاهدین امارت اسلامی در ورسولی بگرام اموالیت چهار تن اشغالگر کشته شدند. از ولایت خبر رسیده است که صبح روز سه شنبه حوالی ساعت پنج بجه درگیری شدیدی میان مجهادین امارات اسلامی و ساکر دشمن در منطقه سیپینی گندی ولسوالی اجرستان صورت گرفته است. در این عملیات یک اسکر اجری کشته و دو تن دیگر نیز برشیده زخمی شدند. از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روزی سه شنبه حوالی ساعت چهار بجه یک تن پلیس محلی در مرکز ولسوالی فوج موسو بر اثر این فجایع کشته شده است. خبرهای رستی از ولت خاندار رأیس که شام امروزی سه شنبه سوکری اجریر در منطقه بازار ورسوالی پنجواهی با کمی مواجهین مواجه کردیدند. در این عملیات که در منطقه چرخوب سرقت گرفت سه از کری دشمن جا و جا کشته و یک تنی دیگر با شدت زخمی شده است. حداقل 78 نفر در سری صیلابهای ناشی از بارانهای شدید در پاکستان جان باختند. گزارشات از ولت بغلان می‌رسانند که دو از کری اوردو اجریر در یک حمله مستقلانه در ورسوالی بلگرانی مرکزی کشته و زخمی شدند. خبرهای رسیده از ولایت میدان وردک هشت هستن اشخالگر در یک حمله مسلحانه در مربوطات میدان شهر مرکزی امولایت کشته و زخمی شدند. قابل ذکر است که در جریان نبرد یک تن از مجاهدین امارت اسلامی نیز به شهادت رسیدند. باز هم روز سی شنبه در سر امفجار ماینی ما جاسازی شده‌ای ای مجاهدین امارت اسلامی در بلسوره سید آباد ولیت میدان وردک سی اسکری عجیر کشته شدند. طبق اطلاعات رسیده از ولیت کاپیسا حاکین یک اراد موتر نوی رینجری پولیسی اجیر در مربوطات محمود راقی مرکز آنولیت شکاری ماین گردید. گزارش های رسیده از ولیت بادغیس حاکی است که در تایی انفجار تکتیکی در بلسوالی دربوم ولایت هشت اسکر اشغالگر به حالاکت رسیده و تعداد زیادی نیز مجراح شدند. گزارش هایی رسید از ولیت هیرات ها کسکه زهر روز سهشنبه ساعت یازه بجه یک تن از مجاهدین فیدای امارت اسلامی بنامی عبدالقدس ولد دکتر عبدالرحمن در داخل مقام ولسوالی کشک کونه قماندان ملیشه های اربکی عبدالحکیم را توسط واسکت ممنوع از مواد انفجاری هدف قرار داد در این عملیات در این عملیات قماندانی مذکور که سرپرستی ملیشه های اربکی سی ولسوالی هر یک روبات سنگی، کشک گونه و گلران را باوده داشت به همراه شش تنی دیگر از ملیشه های دشمن جا جا کشته شدند از ولیت زابل خبر رسیده است که یک تانک اساکر ارده اجیر در ولسوالی شاجوی هدف انفجار ماین ما قرار گرفته است در این انفجار تانک دشمن کاملا تخریب گردیده اما از زیان جانی شده به دشمن اطلاع دخیخی در دست نمی باشد. در نتاجی سقوط یک طیاره در شرق روسیه، د 8 تن کوشتو او 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای رسیده از ولایت یک رنجری اردو یاجیر در مربوطات مرکز قوندس شکار ما گپید. در اثر نیم انفجار رنجار دشمن کاملا تخریب گردید و تمامی سرنشینان آن که به 6 تن می‌رسیدند، همه شدیداً مجروح شدند. طبق اطلاعاتی رسیده از ولایت میدانوردک، مجاهدین یک پسته دشمن را در ولوسوالی چکی امولایت مورد حمله قرار داده فتح نمودند. خبرهای رسیده دولتی میدوند واردک میره سنت. یک جزمه مشترک دشمن در ولسوالی جغتوی آن ولایت مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفت. خبر میافزود حمله ساعت دوازده دو بجای زهری چهارشنبه در منطقه غازی محمدجانی آن ولسوالی بر دشمن سرقت گرفت که در آن سی اسکار کشته و شماری هم زخمی شدند. سفری آمریکا در لیبیا در سری حمله بالای کنسلگری آن کشور کشته شد. باز هم روز چهارشنبه. خبرهای رسیده از ولیت کنر حاکیست که مجاهدین امارد اسلامی یا گزمه اصاکر اشخالگر را در ولسوالی و تپور آن ولیت مورد حمله مسلحانه قرار دادن، خبر میغذید که این حمله در منطقه لودم آن ولسوالی صورت گرفت که در اثر آن چهار تن کشته و متاباقی موفق به فرار شدند. از حولت زابل خبر رسید است که عصر روز چهارشنبه شمبه مجاهدین ملشه های محافظ کاروان اکملاتی را در منطقه تازیربات مربوطات ولسوار شاجوی مورد حمله مسلحانه قرار دادند. در این حمله چار ملشه امنیتی کاروان کشته شدند. در اثر یک عملی احتراق در یک از فابرکه های در شهر کراچی پاکستان کم از کم 250 تن جان بارتن و اشستن دیگر جراحت برداشتند. اطلاعات رسیده از ولایت میندوارد که پنج عسكري اوردی اجیر تا یک انفجار مویینی جاسازی شده مجاهدین در ولسوالی سیدابات امولالت کشته شدند. خبرهای رسیده از ولایت کنر می‌رساند که مجاهدین امارات اسلامی پوسته و گزمه‌ای از عسکری اجیر در ولسوالی شیگل امولالت حمله مسلحانه نمودند. خبر می‌افزاید که در اثر هر دو حمله چهار عسکر اجیر کشته و زخمی شدند و بر علاوه دو عراوده موتر نیرنجر دشمن نیز کاملاً تخریب گردیده است. تظاهر کنندگان در مصر بالای سفارت آمریکا در شهر قاهره یورش بردند علت این مظاهره نشر یک ویدیو در آمریکا بود که در آن به پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم توهین شده است باهم چهارشنبه از ولات خبر رسیده است که کاروان اکمالاتی اشغالگران خارجی در منطقه تورغندی و لسوالی گلران مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است در این عملیات، زخیره سخت اشغالگران خارجی و یک تانکر کاملاً حریق گردیده و یک تانکر دیگر نیز برای صحبت مرمی های مجاهدین تخریب گردیده است. در این درگیری، دو ملشه ام جابجا جا کشته و سیتنی دیگر به شده زخمی شدند. از ولسوالی سنگین ولد هلمن خبر رسیده است که یک تانک اشغالگران خارجی هدف اینفجاری ماین قرار گرفت. در این انفجار تانگیدشمن کاملا تخریب گریده و تمامی راکیبین آن کشته و زخمی شدند باز هم چار در اثر حملات مسلحانه مجاهدن در ولیت زابل دو اسکر جا جا کشته و یک تنی دیگر به شدت زخمی شدند طبق اطلاعات رسیده از ولیت میدان وردک دو اسکر اردی اجیر در یک حمله مسلحانه در ولسوی نرخان ولیت به قتل رسیدند گزارشت از اولاد کنرد می رسانند که چهار اسکری اردی اجیر در یک حمله مسلحانه در ولسول اسمار آن اولاد کشته شدند. Tilaukseti rasiida ajoin lujar hakien paineista iskoljat, varsinkin yhdessä در yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä yhdessä محل لا محل. خب دوستان عزیز، اخبار یک هفته را شنیدید. که این عملیات را انجام دادن، الله تعالی برایشان پاداش بزرگ عطا نموده، و این کاری ایشان را درمان برای قلوب مسلمانان مظلوم بگرداند و الله تعالی به کارهایشان برکت دهد و به ایشان توفیقی بیشتر دهد. خوب همکاری عزیز زیاد پر حرفی نمی کنیم می به طرف بخش دومی برنامه خود که در آن اشعار گنجانیده شده است تفسیر سوره اخلاص به زبان شاعر مشرق زمین علامه اقبالی لاهوری <تصفح> احد. من شبی صدیق را دیدم بخواب گلزی خاک راه او چیدم بخواب آن امن الناس بر مولای ما آن کریمی اولی سینای ما همت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر گفتمش ای خواسی خواسان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق پخته از دستت اساسی کار ما چاره فرما پی آزار ما گفت تا که در هوس گردی اسیر آب و تاب از سوره اخلاص گیر اینکه که در صد سینه پیچت یک نفس سری از اسرار توحید است و بس رنگ او برکن مثالی او شوید، در جهان عکسی جمالی او شوی آنکه نامی تو مسلمان کرده است از دوی سوی یکی آورده است خیشتن را ترک و افغان خانده ای وای بر تو آنچی بودی مانده ای وارهان نامیده را از نامها ساز باخم در گذر از جامها ای کی تو رس وای نام افتاده ای از درخت خیش خام افتاده ای با یکی ساز از دوی بردار رخت وحدت خود را مگردان لخت لخت ای پرستار یکی گرتو توی تا کجا باشی سبخان دوی تو در خود را به خود پوشیده ای در دیلاور آنچه برلب لب ای صد ملل از ملتی انگی خودی بر حصار خود شبیخون ریختی یک شو توحید را مشهود کن یک شو توحید را مشهود کن غائبش را از عمل موجود کن لذت ایمان فزاید در عمل مرد آن ایمان که نایت در عمل مرد آن ایمان که نایت در عمل فقد کن المعین لهم سوانا فما ذاک ري خو الله الصمت گررب الله الصمدل البستائي از حد اسباب بیرون جستائ بنده حق بند اسباب نیست زندگانی گردشی دواب نیست ممسلم استی بیناز از غیر شو اهل عالم را سر پا خیر شو پیش منعم شک گردون مکن دست خیش را از آستین بیرون مکن. چون علی ساز بانانی شاعیر، گردنی مرحب شکن خیبر بگیر. منت از اهلی کرم بردن چرا؟ نشتری لا و نعم خوردن چرا؟ رزق خود را از کف دونان مگیر. یوسف استی خوش را ارزان مگیر. گرچی باشی مور هم به بال و پر. حاجت پیش سلیمان مبرد. راه دشوار از سامان کم بگیر در جهان آزاد زی آزاد میر صبحی اقلل من الدنیا شمار از تعش حرن شوی سرمایه دار تا توانی کیمیاشو مشو در جهان منعم شو سائل مشو ای شناسای مقامی بو علی جرعه آرمز جامی بو علی پشت پازن تخت کاوس را سر بده از کف مده ناموس را، خود به خود گردد دریم ای خان باز بر تیهی پیمانگانی بین یاز. اسلامیان هارون رشید، آن که نقفور آب تیغ او چشید. گفت مالک را که ای مولای قوم، زوشن از خاک درت سیمای قوم، ای نواپرداز گلزار حدیث، از تو هم درس اسرار حدیث، لعل تاکی کی بند اندر یمن، خیز و در دار الخلافت خیمزن، ای خوشا تابانی روز عراق، ای خوشا حسن نظر سوز عراق، می چکد آب خزیر از تاکی او، مرهم زخم مسیحا خاکی او، گفت مالک مصطفی را چاکرم کرم، نیست جز سودای او اندر سرم، من که باشم بسته فتراکی او، بر نخیزم از حریمی پاکی او، زنده از تقبیل خاکی یسریبم، خوشتر از روز عراق آمد شبم، عشق میگوید که فرمانم پذیر، پادشاهان را به خدمت هم مگیر، تو همی خواهی مرا آقا شوی، بنده آزاد را مولا شوی، بهر تعلیم تو آیم بردرت، خادمی ملت نگردد شاکرت، بهره خواهی اگر از علم دین در میانی حلقه درسم نشین به نیازی نازها دارد بسه نازی او اندازها دارد بسه به نیازی رنگ حق پوشیدن است رنگ غیر از پیرهن شویدن است علم غیر آموختی، اندوختی، روی خش از غازه اش افروختی، ارجمندی از شعارش میبری، من ندانم تو توی یا دیگری. از نسیمش خاکی تو خاموش گشت، و از گل و ریحان تهی آغوش گشت، کشت خود از دست خود ویران مکن، از صحابش کدیه باران مکن، عقل تو زنجیری افکار غیر در گلوی تو نفس از تار غیر بر زبانت گفت‌وگوها مستعار در دل تو آرزوها مستعار قمریانت را نواها خواسته سروهایت را قباها خواسته بادمی میگیری به جام از دیگران جام هم گیری بوام از دیگران آن نگاهش سرما سر زاغلبصر سوی قومی خیش باز آید اگر می شناست شمی او پروانه را نکداند خیش و هم بیگانه را لستمینی گویدت مولای ما وای ما, وای ما ای وای ما ای وای ما زندگانی مثل انجم تا کجا هستی خود در سحر گم تا کجا ریوی از صبح دروغی خورده رخت از پهنای گردون برده ای آفتاب استی یکی در خود نگر از نجوم دیگران تاب مخر بر دل خود نشی غیر انداختی خاک بردی یا در باختی تا کجا رخش زیتاب دیگران سرسبوک ساز از شراب دیگران تا کجا توفی چراغ محفیلی ز آتش خود سوز اگر داری دلی چون نظر در پرده های خیش باش می پرو اما بجای خیش باش در جهان مثل حبابی هوشمند راه خلوت خانه بر اغیار بند فرد فرد آمد که خود را واشناخت قوم قوم آمد که جز با خود نساخت از پیام مصطفی آگاه شو از پیام مصطفی آگاه شو فارغ از ارباب دون الله شو لم تبذل الروح احتسابا دعاء الليل سهم في عدانا وحدث من رايت بان شعبا يباد اخي يبات اخي <تصفيق> Väläläl-ġudujufni l-mara-pabla, fana-i-hi-wal-albuklu-fima-i-shafifi, jazidu fana telt telt telt misris kondi aishin mu pat telt telt telt telt انسانها هرچند چند پرهیزگار و زاهد و بدور از زواهر و شهرت باشند اما وقت مورد ستایش و تمجید قرار بگیرند متاثر میشوند و شاد میگردند البته بعضی زیاد و بعضی کم با علمای پرهیزگار و دیندار نشست و برخاست کرده و دیدم که هرگاه از آنها تقدیر به عمل آمده و مورد ستایش قرار گرفته اند، تکان خورده و خوشحال شده اند، سخنی خوب بر دل اثر میکند و آنچه از پیامبری راستین باقی مانده این است که باید به با مردم طبق جایگاهشان بها داد و به نسبت جایگاهشان باید مورد داشت قرار بگیرند این یک هدیه الهی است که بتوانی کسی را شاد کنی و خودت را با خوشرفتاری به دیگران خوشبخت نمایی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولک. پس سبب رحمت خداوندی برای آنها نرم شدی اگر درشت خوب و سنگ دلبودی از اطراف تو پراغنده می شدن مؤلف کتاب آین دوستیابی می گوید یکی از عوامل جذب مردم این است که بیش از حد آنها را مورد ستایش و تمجید قرار دهی اما این به نظر من درست نیست بلکه باید میان روی کرد قد جعل الله لكل شيء قدره خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده است نچا پولوسی عیان و خودساخته و نه خشکی و جفای محض، بلکه اخلاق و نجابت و بزرگواری بهترین چیز است. من و تو می توانیم به مردم به اعتنا باشیم و در مقابل آنها روی ترش نماییم. اما این ما هستیم که آنها را از دست می دهیم و آنها زیانه نمی کنند. چون غیر از من و تو افراد دیگر میابند که در مقابلشان فروتن باشند و لبخند بزنند و با آغوش باز از آنها استقبال نمایند. و بالی مهربانی را برای مؤمنانی که از تو پیروی کرده اند بگستران یکی از عوامل خوشبختی ما این است که دل مردم را به دست آبرین. چون ستایش و دعا و محبت و مهرورزی در دستی مردم است و آنها گواهان خدا بر روی زمین هستند و قولو لین ناس و با مردم سخنینک بگوید در زندگی خود افرادی را میشناسم که هنر تعامل با مردم را یاد دارند و خیلی زود دلها شفته آنان می گردن. گویا برگه های پهنی هستند که نسیمی ملایم از آنان می وزد و هر کجا جا بروند مردم به آنها چشم می‌دوزند. با چهره های باز و روی خوش با مردم روبرو می شوند دلهایشان صاف و زبانهایشان پاک است براستی اینها چقدر خوشبختند و چی بسیار مردمی که به وسیله آنها خوشبخت می‌شوند. اگر خدا توفیق دهد، بنده می برای مقبولیت خود تلاش کند. محبوب شدن و مقبولیت را با گنجه قارون و پادشاهی سلیمان علیه السلام و خلافت حارون الرشید نمی خرید. بلکه محبوبیت و مقبولیت را با اخلاص نیت و صداقت با خدا و خیرخواهی مردم و به حبت خدا و پیامبرش و توازع فروتنی می توان به دست آورد. خصلت‌های های زیبا و صفات پسندیده، انسان را خسته می کنند چون بالا هستند و باید به سمت بالا قدم برداشت اما بدخویی و رفتار و اخلاق زشت ای است که هرکس خواهانی آن باشد به دست آوردنش سهل و آسان است چرا که در پایین افتاده اند بالا رفتن دشوار است اما افتادن و پایین آمدن آسان می باشد هرکس خاری را بپذیرت به آسانی آن را به دست می آورد و کسی که به دیگران توهین کند براحتی مورد احانت قرار می گیرد و فردی که مورد است اگر زخمی شود درد احساس نمی کند. در زندگی چیزی هست که باعث خوشبختی شما و دیگران می گردد و آن این که به استعدادهای دیگران احترام بگذاری و به توانایه هایشان اعتراف کنی و نگاه های بلند آنان را تشویق نمایی و کوشش های آنان را مسادره نکنی و نقش آنها را ملغا و به نتیجه نمایی. یکی از مواردی که صفای زندگی مردم و صفای وجودشان را تیره می نماید خود است. بعد این صورت که فرد فقط خودش را ببیند و فکر کند که او تنها ستاره درخشان و گمبد فلک و یکتای روزگار است یا گمان کند که او برکت زمان است و غیر از او دیگران ناقص و پر از عیب و ایراد هستند. ما افراد همراه بودم که در راه خیر در حد توانایی خود تلاشهای کرده اند. گمار می بردم آنها قدر و جایگاه خود را میدانند و در مورد جایگاه و نقش خود مبالغه نمی ورزند اما وقت آنها را شناختم دیدم که بسیار از آنها بر این باورند که تلاش های آنان بیشتر و برتر از مقداری هست که مردم می و بالاتر از آن است که دیگران تصور می نماین. دانشجوی چند ساله کوچک و مختصر برای جوانان تعلیف کرده بود من از کارش تقدیر کردم ناگهان او شروع کرد که شمار زیاد توزیع شده و تعریف کرد که چگونه این کتابچه ها مورد استقبال مردم قرار گرفته و چقدر زیاد به فروش رفته اند و فلان و فلان نفر کتابچه ها را ستوده اند و سخنان از این قبیل گفت. تعجب کردم که انسان در وجود خودش چقدر احساس بزرگ می کند و آنچه ای را امیدی هد چقدر برای او گران بهاست هاست و منفورترین مردم برای او کسی است که جایگاه او را پایین بیاورد. یا بتلاشی او اعتراف نکند یا بنقش او اعتماد ننماید. طالب علم دیگر سخنرانی تقریبا خوب کرده بود. من نوار او را گوش دادم و می‌خواستم از کارش تقدیر نمایم و او را تشویق کنم تا ادامه دهد. تلفنی با او صحبت کردم. به محض اینکه از نوار حرف زدم و آن را ستودم، او این را فرصت دانست. اول دعا کرد که خدا همه زنان و مردان مسلمان را از نوار سخنرانی او بهره‌مند سازد. و نفع آن را عام بگرداند. گویا این نوار زمین و زمان را به هم زده و مسیر حرکت خورشید را تغییر داده است. سپس برای من بیان کرد که چگونه به محل ایراد سخنرانی رفته و تعداد حضار را گفت و طور از خود تعریف کرد که گمان نمی‌برم برم او آنچنان باشد. پس دانستم که انسان در عرضش و نقش و تأثیر خود تا حد زیاد مبالغه می کند و آن را چندین برابر اندازه واقعیش می داند. و اگر کسی ارزش او را کم بیداند و جایگاه او را پایین بیاورد، چی مصیبت بزرگ است؟ از واعیزه به خاطر مواعیزهی که ایراد کرده بوده، تشکر کردم. من در آنجا حضور نداشتم، اما شنیدم که سخنرانی کرده است. پس او مرا خبر داد که شمار زیاد از مردم حضور داشته و متاثر شده و به گریه افتادن و بعضه به دست او توبه نمودن، لذا از کم کردن جایگاه دیگران بپرهیز Oztahkieläinen, vaadimme, että he ovat hyviä. He ovat لا He ovat من He ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. Az ovat hyviä. He ovat hyviä. He ovat hyviä. He اگر مردم را به خاطر استعدادهایشان تشویق کنی و به آنها توجه نمایی تو را دوست می‌دارند و این شیوهی قرآنیست ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وكساني را که پروردگارشون را صبح و شام می‌خوانند مكن مکن و صبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي و با هم نوشین شو که را صبح شام Abesäta well ahul aoma wame judurikalä allahoozzakka. Cerádar hemkest warúi bargardon, Kinabinaban di u amad, watusmédoni saját pakki zaggardát. Sírat igaron naviteään. Chizeki jabala ebni Ayhamra, az Islam bargardan, én bú kibe andazama qamás an shaistai gomanas مورد توجه قرار نگرفت طه حسین در کتاب ال ایام می نویسد یکی از علمای از هر آمد تا از من امتحان بگیرد پس به من گفت سوره کهف را بخوان ای نابینا این کلمه در گوش طه حسین مان و همواره او را تکان میداد و اونا را حتش و نتیجه اش این شد که از هر را به باد دشنام و ناسزا گرفت و سپس برای همیشه آن را ترک کرد چی کسی هست که خودش را کم ارزش بداند. چی کسی فکر می کند که چیزی نیست؟ نه، همه خودشان را دوست دارند و همه ارزش خود را بالا میپن دارند و همه قدر خود را میدانند. نگاه کنید، شما وقتی در یک مجلس نشستید، گوینده از خودش میگوید و از صیغه اول شخص مفرد زیاد استفاده میکنند. مثلا میگوید: من بیرون رفتم، دیدار کردم، به من گفته شد، با من تماس گرفتند. آیا درست است که بابی توجهی این احساسات را خرد کنیم؟ در سال دومی متوسطه در دبیرستان ریاض درس می‌خواندم با شعر اهمیت میدادم و شعر می‌سرودم قطعه شعری در نشریه داخلی دبیرستان نوشتم قطعه شعری در نشریه داخلی دبیرستان نوشتم یکی از اساتید مرا ستود پس من پیش خود احساس کردم ابو تمام یا متنبی یا کمی بهتر از آنها هستم گروه از دانش آموزان دبیرستان دیگر با دبیرستان ما آمده بودن جلسه برگزار شد و از من خواستند تا شعره بخوانم چون در میان دانش آموزان شاعر یا کسی که مانند من ادعای شاعری داشته باشد نبود از این رو من انتخاب شدم تا شعره آماده کنم فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعیدا طيبا اگر آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید استاد ادبیات دبیرستان قصیده من و روشی آن و مختصر بودن کلمات آن را ستود. من گمان کردم که شعرم واقعا چنین ویژگی های دارد و آن را زیبا و کم نظیر پین داشتم. اما وقت بزرگ شدم و طعم ادبیات را چشیدم و با شعر آشنا شدم بخودم و قصیده ام خنده ام گرفت قصیده را با این شعر آغاز کردم. لکه یا معهد الاجل سلامی عامر الود و الامانی امامی سلامی من به تو ای دبیرستان بزرگ و سرشار از محبت. من آرزوهای در پیش دارم. از خرد کردن دیگران چه چی چیز عاید من و شما می شود؟ آنها از راه خود بر نمی و ما فقط آنها را ناراحت می کنیم و آنان را با خود دشمن می نماییم. پس باید قسمت درخشان زندگی مردم را بسیتایی و از صفات پسندیده آنها تقدیر کنی و از بدیها و عیبهایشان چشم بی پوشی. هر چیکونی به خود کنی یکی از حکما میگوید انسان عیبجو مانندی مگس است که فقط روی زخم مینشیند بعضی به آفت ولی و اما گرفتارند اسم هر کس را بیبری میگوین آدم خوب است ولی بعد این ترتیب بعد از کلمه ولی او را به شدت مورد عیب قرار میدهند و قصدن حرمت او را حد می‌کند ویل لكل همزت اللمزه وای به حال هر ک جو و ط نزن باشد همهظ این مشیم بینمیم بسیار عبجوی که دائما سخنچینی می کند وا یاغوط ب و کو باوا برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکنند. ما زمانی خوشببخت میشویم که دیگران را خوشببخت و شادمان کنیم و با استعدادها و توانایی ها و خوبی هایشان اعتطراف نماییم. تجربه کردهم که ما به همان مقداری که به دیگران احترام می‌گذاریم و به خوبیشان اعتراف می‌کنیم و به آنها توجه می‌نماییم، مورد توجه و احترام قرار می‌گیریم. و به همان نسبت آنان نیز به خوبی های ما اعتراف می‌کنند. همچنین به همان اندازه‌ای که خود را به بیخبری می‌زنیم، به همان نسبت آنها از ما روی می‌گردانند و به ما به توجه می‌نمایند. کدامین عاقل است که می‌خواهد مردم به او احترام بگذارند؟ در حالی که خودش عاشق توهین به مردم است و دوست دارد مردم او را بزرگ بدارن و حالان که خودش برای تحقیر آنها می تلاش های دیگران را تحقیر نکن. از روابط اجتماعی به این تجربه دست یافته ام که یکی از عوامل خوشبختی تو و دوستت این است که او را آنگونه که شایسته اوست مورد تقدیر و تکریم قرار دهی. از آن جمله این که او را به بهترین نامی که دوست دارد صدا بزن و آن همان اسم یا کنیه است که او بدان معروف می باشد کسی که برادرش را با اشاره های نامشخص مثل آهای تو صدا می زند انسان کم احساس و بد بدنهاد است آیا تو می پسندی که کسی از روی قصد اسم تو را نگیرد یا اسم و کنیه اترا اشتباه بگوید گمان نمی برند دوست داشته باشی خود را به نادانی زدن و تحقیل عمل نیکی دیگران. دلیل طبیعت و اخلاق زشت انسان و نشانه سردی عواطف و احساساتش می باشد اگر زن خانه را تمیز و مرتب کند و با خوش بوزدن فضای خانه را معطر نماید اما شوهر بیاید و تمام اینها را نادیده بگیرد و تشکر نکند و چنان نشان ندهد که متوجه این خوبی ها شده قدر زن نراحت می شود چه این کار از بین بردن تلاش دیگران و توجهی به کوشش آنهاست بنابراین به دیگران توجه کن و از کسی که کاری کرده تشکر نما. از منظره زیبا، بوی خوش، کار خوب، صفت پسندیده، شعر مؤثر و کتاب مفید تعریف کن تا اسمت در دفتر اهل مروت و جوانمردی و وفا ثبت گردد. خودت باش! شعر انا فی مکه از عمر ابو را شنیدم. این شعر با این بیت آغاز میشود شود. لم تزال يا علام امر مو الى الحق يا عروس الرمال اي عروس تو همواره در گذر ايام جایگاه حق بودهی شعر خوب گفتن و شیرینی نغمه را از او یاد گرفتم قصیده و روش ارا ادادن آن را حفظ کردم و قصیده از خودم ان سرودم و در مدرسه بلند شدم تا آن را بخوانم و تلاش کردم تا لباس شخصیت ابو ریشه را بتن کنم و شعرم را به سبک همانندی او ایرادی هم. اما من ابو نیستم بنابراین شعری که من خاندم خست کننده و سرد بود. بعد از آن تقلید را رها کردم و قصیده ها را به سبک خودم سرودم. چنین صحنه را در شهر حده دیدم که امام مسجدی در نماز عشا تلاش می کرد تا از صدای یک قاری معروف تقلید کند. اما خیلی فاصله داشت. ان امام میل ارزید و صدایش می و نفسش قطع می شد و من پشت سر او از حالت و رنجی که میبرد و از اینکه که میخواست از قاری دیگر تقرید کند خسته شدم و به یقین دانستم که خداوند برای هر انسان توانایی ها و استعدادها ها و صفات آفریده است که با صفات و استعدادهای های دیگران شباهته ندارند لیکل جعل نمی کم شراعت و منهجه برای هر یک از شما آین و روش قرار داده ام. هرگاه خواست ابتکار نشان بدهی و تأثیر بگذاری باید همان طریقه و روش خودت را بکار گیری قل کلو یعملو علی شاکیلتی بگو هرکس برابر روش خود کار میکند صدای دیگران را تقلید مکن و مانند دیگران حرف نزن و همچون دیگران راه مرو و مانند آنها منشین تا خودت را از بند تقلید و تاوان تصنع و تکلف آزاد کنید جذابیت و خوبی شما در مستقل بودن شما در زمینه خلاقیت و اثرگذاری است. تا بد این سان نتیجه منحصر به خود داشته باشد و سبک شما مستقل باشد کاری را که در توانت نیست رها کن در شهر اوبها روز جمعه سخنرانی می کردم بیشتر سخنرانی هایم در مورد سیرت بود گویا مردم این برنامه را میپسند از من خواسته شد تا در مورد سنگینی مهریه ها سخن بگویم چون مردم به طرح این موضوع نیاز داشتند و این موضوعی است که با واقعیت زندگی و اوضاع عمومی مردم مربوط می شود. و من در این باره فعالیت نکرده ام چون توانایی و استعدادم در موضوع سیرت است و آن را دوست دارم تقاضای مردم را پذیرفتم و در مورد سنگینی مهریه کردم. آیا و حدیث بیان نمودم و سپس به این سو و آن سو زدم و کوشیدم تا مطالب پراغنده موضوع را جمع نمایم اما هرچی بیشتر می میکردم موضوع پراغنده تر شد. عرق کردم و علامت عقیم نوشینی در من هویدا شد و خود برا به پایان رساندم بهترین عنوانی که می توانستم برای سخنرانی خود بگذارم شعاع در افق بود تا عنوان آن مانند خودش پراغنده و به باشد بعد از آن یقین کردم که برای من بهتر همین است که در چارچوبی دانش خود سخندانی کنم و اعصاب خش را از رنج تکلیف راحت سازم. در قرآن آمده است: و ما انا من المتكلفين و من از تکلیف کنندگان نیستم. عمر رضی الله عنه میگوید: ما از تکلیف نهفده ایم. همه ما اگر سعادت و آرامش خاطر میخوایم و دوست داریم آنچی به مردم ایرا امیدیم خوب باشد، باید از چیزی سخن بگوییم. و کاری بکنیم که می توانیم و خوبیات داریم در حدیث آمده از خداوند جل جلالوهو دوست دارد هر یک از شما کاری را که انجام میدهد، آن را خوب و کامل انجام دهد چون انجام خوب و کامل کارها انسان را از بیماری پشیمانی شفا می بخشد و از رنج سرزنش راحت می کند و امانت به اهل آن سپرده می شود بینظم و به بی هدف ما روز دوازده تفسیر جمع آوری کردم طبری، ابن کثیر، بغوی، زمخشری، قرطبی، فیزگلال، شنقیطی، رازی، فتح القدیر، الخازن عبی مسعود و قاسمی سپس تصمیم گرفتم از هر تفسیر روز یک آیا مطالعه کنم نیزا یک تفسیر را بر و یک آیا را خاندم و سپس تفسیری دیگر را بر و بعد این ترتیب تفسیر یک آیا را از هر دوازده تفسیر مطالعه نمودم سپس از خودم پرسیدم الان چی در ذهنم مانده؟ دیدم چیزی در ذهنم نمانده است جز کلماتی که بیشتری آنها را از قبل میدانستم. تنها چیزی که عایدم شد این بود که احساس خستگی می‌کردم علت این بود که روش درست این نیست و ترتیب و نظم در کارم نبود بلکه کار شتاب زده و نسنجیده بود اگر می‌خواهی از مطالعه ها استفاده ببری و خسته نشوی پس با جمع آوری منابع و مراجع زیاد خودت را خسته نکن بلکه یک برنامه درست و هدفمند داشته باش که تو را از عجله و خستگی حفاظت می کند و مداومت و ادامه دادن به مطالعه را برای تضمین می نماید گرچی نتیجه آن کم باشد کاری کم اما همیشه و پیوسته اصلی است. پیامبر صلی اللہ علیه وسلم از تمام کارها کاری را دوست داشت که انجام دهنده اش بر آن پایبندی می گرچه کم بود فزون طلبی مایه غفلت است پس از آن که مقدار پول به دست آوردم، با شوق و اشتیاق به یک کتاب فروشی عمومی رفتم و تصمیم گرفتم از هر کتاب یک نسخه بخرم، چون به داشتن کتاب زیاد علاقه بودم. قفصه ها را پر از انواق کتاب کردم و در هر رشته یک کتاب خریدم تا اینکه ده ها کتاب در مورد روانشناسی، اصول فقه و چکیده فرهنگ‌های های عمومی خریدم. می‌خواستم مطالعه کنم، اما نمیدانستم چی تاو شروع کنم و کدام این کتاب را انتخاب نمایم و کدام را کنار بگذارم. بسیاری از کتاب‌ها را دیدم که مطالبی یک دیگر را تکرار می‌کنند. بعضی از کتاب‌ها مطالب غیر علمی و کلماتی به معنی داشتند. سالها گذشت و این کتاب‌ها را تکان ندادم، فقط مرتب کردنشان برایم مشکل شده بود و نمی دانستم چی کارشان کنم تا اینکه با علمای باهوش و مردان شریف هم کردم و قضیه را برای آنها بیان نمودم آنها مرا بروش درست و موفقیت آمیز رهنمایی کردند و آن اینکه که کتابهای مرجع و اصول و کتابهای بهتر را باید نگهداری و مرتب نمود و مورد مطالعه قرار داد و همیشه در آن بررسی کرد و ساییر ها را باید برای تحقیق و پژوهش نگه داشت. روحیه آرام گرفت و از این پشنیهاد خوب و درست آراموش یافتم. اگر کتاب داری یا مشتاق مطالعه هستی، بهترین کتابه ها و منابع را بردار و به آن مشغول باش تا از پراغندگی ذهنی و حیرت در انتخاب در امان بیماری. قالو خودی لعینمی کلین فقلت لهم، ف العین فضل ولكن ناظر العین گفتند از هر یک منبع را بگیر به آنها گفتم منبع و سرچشمه خوب است اما کسی که در آن نگاه میکند باید خوب باشد الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر فزنطلبی شما را غافل گردان تا آنکه قبرها را زیارت کردید در این نیان به یاد دانش جویان افتادم که همواره به دنبال کتاب های پیچیده و نسخه های خطی و کمیاب هستند و پیوسته کتاب جمع آوری می کنند اما کم مطالعه می و شناختشان نسبت به کتاب های اصول اندک است. آنها فقط می کتاب خانه بزرگ داشته باشند که دیگران را با نام بردن کتاب های کمیاب متعجب و تعجب بعه از دانشجویان جویان بخاطر اینکه تفسیری مقاتل ابن سلیمان را گیرنمی آورند تاسف میخورند و حال آنکه تفسیری ابن کثیر را به طور کامل نخوانده‌اند. بعضی به خاطر نبود فواید تمام حسرت میخورند در حالی که فقط اسم مؤلف فتح الباری را شنیده و رنگ روی جلد آن را ندیده‌اند. و من هم امیوں لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون و برخی از ایشان سواد هستند و کتاب را نمی دانن مگر آرزوهای و فقط تخمین می زنن. پس نباید چینین باشد که شاهراه اصلی را رها کنی و خودت را براهای انحرافی و فراغی مشغول نمایی و هموارا دنبال جزئیات باشی و کلیات را ترک کنی. حکمت این است که ابتدا به چیزهای بپردازی که از همه مهم تر است و هرکس هدف و مقصد را نداند، راه برای او طلانی می شود و سواریش خست و او خودش را از پای در و به هدف خود نمیرسد. رسد بیا تا من و شما به سوی خداوند توانگر یک تا، بینیاز، همیشه زنده، پایدار و دارای شکوه و بزرگی روی بیاوریم بیا تا خودمان را در آستانه ربوبیت او بیاندازیم و به درگاهی یگانگی او پناه ببریم. بازاری و تزر را از او بخواهیم و منتظر اجابت او باشیم اوست که تندرستی و بهبود می بخشد. O, afarin on da, rosisi on da, zondakon da, wa miro on da. Allahun me indannassa alukala afla, alafieta, alafieta, alafieta, da, imetä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 يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفن المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد ادوريا سلاحي امتقي في دوريا تحديدي خذ مني فؤادي وامنعوني سلاحي امتقي صهول منوني خذ مني فؤادي وامنعوني دوريا بصابي وقاي مهيمي حفتر فاني لم اعيش لادوق ذلا ولا لاذوب في فضل الحنوني فاني لم اعيش لادوق ذلا ولا لِأَذُوبَ فِي حَضْنِ ولكن وَلَكِنْ كَيْ على عَلَى حِمَايَةٍ در این برنامه وقوائي مهم هفترا مورد بالرسي خرار مدهين قضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحداد نكبل كف خنزير اللعين ونصرع تنادي در این هفته یکی از واقعه های مهم بیانیه صیاب در مورد رزمندگان ضد آمریکا و فیلیان اسلام بود. به این مناسبت مطلب داریم زیر عناونی صیاب بر خود حکم میکند. عبدالرب رسول صیاب به روز شنبه مورخ 18 سمبولا که مصادف با کشته شدن احمد شای مسعود رهبر اتحاد بدنامی شمال می باشد یک بار دیگر بیانیه تندوتیزی را ایراد کرده و غوغای را برپا کرد لم اعش ولا لم اعش در این بیانیه سیافت زمن چرندیات دیگر مخالفت با اوباما و غلام حلقه او کرزهی را جنگ با خداون و رسولی و اعلام داشت و زیمنان حملات استشادی را ناجایز قرار داده و مجاهدین را با آنچه که از بلاغت و فساحت در اختیار داشت ناسزا گفت و و و و نوشتن و یا گفتن در باره سیافت روز و ماه نه بلکه به سالها ضرورت دارد و صفات مقدسه وی به صفحات چند مقاله، مجله و کتاب نه بلکه ضرورت به موسوعه و دایره المعارف دارد زیرا هر روی و هر رنگ شخصیت متقلب و ماکر وی ضرورت به بحث و بررسی دارد خوادی <تصفيق> و نخونی سلاحی ام نویسنده کتاب رد شبهات در مورد جهات بعضی از سخنان سیافرا از کتاب او اخیل مسلم نشری مرکز البنیان للعلام الاسلامی ترجمه کرده است که بدون کمی و کستی آن را خدمت شنوندگان قرار می دهیم و فیصل را به خودشان وگذار می کنیم تا در این شخص حکم نمویند نویسنده کتاب می نویسد سیاف در کتاب عربی خود بنامه اخیل مسلم که مرکز البنیان لیلعلم الاسلامی آن را در دوران جهاد بچاب رسنده است در صفحات 58، هشت و پنجانو خطاب به مجاهدین می نویسد آمریکا و روس هیچگاه نمی که حکومت اسلامی در افغانستان پیاده گردد و به همین لحاظ سعی و گوشش دارند که ظاهرشا را آورده و در افغانستان حاکم سازند مقصود از طرفان در برنامه روس و آمریکا اعضا و ارکان حکومت ظاهرشا و دادخان است آنان که راه را برای داخل شدنی روز در افغانستان هموار ساختند و آنان که برای ایجاد تنظیم های کمونستی یعنی خلق، پرچم و غیره اجازه فعالیت دادند و مردم را به کفر و هات تشویق کردند و در نظیم ها دلائل بسنده مبنی بر کفر این حکومت که افغانستان را فروختند موجود است و این به طرفان پیشنه شده برای تشکیل حکومت آینده در افغانستان خارج از ملت اسلام هستند و آنها اصلا کفار هستند و آمدن آنان بر قدرت آرمانهای روس را تحقق میبخشد زیرا کفر ملت واحد است و در صفحه چل می نویسد جهاد خود ادامه دهید و اسلحه خود را محکم گیرید و انتظار اوامر قیادت اسلامی خود باشید و با جهاد خود تا بر پایی عدل اسلامی و خارج ساختن ریشه های کفر و الحاد ادامه دهید و به اوامر هیچ کسی قبل از خروج روز گوش ندهید وگر روزی بیاید خدای نخواسته که من در آن روز ضعیف و گمراه شوم و شما را به آتشی بس قبل از خروج کفر و قیام حکومت اسلامی امر کنم مرا در آن وقت اطاعت نکنید بلکه خداونج جلاله و رسول ویس صلی علیه و سلام را اطاعت کنید و به آرزوهای امت که در شما نهفته است احترام بگذارید و نصفع حالا خود فیصله کنید که این سردار منافقان چی نوشته است و به چی عمل می کند خود بر خود حکم میکند و ضرورت بر حکم دیگران نیست ظاهر شو و همراهانش را کافر میداند ولی در مهمانی وی هزارها دالر را بخرش رسانده و با وی سر احترام خم میکند از سیاف بپرسید که بناهن ان به آنچه که نوشتهی ای آیا امریکایان و سایر نیراهای خارجی موجود در کشور کافر نیستند و یا این که حکم الهی در مورد جهاد با کفار تغییر کرده است و یا آنچه تو در آن اشتراک کرده ای حکومت اسلامی است و یا خیر در صفحه 43 و 44 وضعیت مداخله آمریکا و روس را در افغانستان و جهان اسلام بررسی کرده می نویسد برادر مسلمان به دین خود رجوع کن و به ایمان خود بازگرد بعد از آن ببین که حکم سکوت در این موقع چه خواهد بود و آیا تو از این حالت راضی هستی؟ و اگر دیده که این حالت در دهنده مؤسف و زلیل کننده بوده و باید تغییر داده شود؟ پس در این حالت اگر برای نجات آن گامی برداشتی خیر بزرگی را انجام دادی و, و جل جلاله تو را مددگار می باشد و در عملی تو برکت می و خداونجل جلالهو کسی را نصرت می بخشد که خداونجل جلالهو را نصرت کند و اگر به این وضع راضی شدی پس امید است که آن را به اسلام منصوب نکنی و لال فی حضن سیاف که با این دروی و منافقت خود زلت و خاری را بر خود روا داشته است در صفحه هفته کتابی مذکور می نویسد در هنگام سختی و مشکلات در جهاد تصفیه صورت می گیرد و آنان که از فرزندان جهاد نیستند و باری دوش جهادند به عقب می روند. و در صفحه تن گروه کوچک مخلص و پاک نفس باقی میماند و در این وقت نصرت و تایید خداوند جل جلاله نازل می شود ببینید این منافق چه گونه بر خود حکم نموده است که در هنگام سختی ها از راه جهاد و اسلام منحرف گردیده تحت این تصفیه کاری خداوند متعال قرار گرفته است. <تصفيق> و تجر این لا را هنگامی که ریال و دلار جهاد در جیوش سرازیر میشد و هیچ نو سختی و مشکلی متوجهش نبود دم از اسلام و جهاد واقعی میزد و حالا که در جهاد کنونی علیه آمریکایان و مزدورانشان سختی ها و مشکلات در قیبال است و پل هایی را که از خون مجاهدین جمع کرده است در خطر واقع میگردد و در جهاد کنونی که ریال و دلار وجود ندارد از صف مجاهدین اسلام جدا شده به صفی کفار علیه مجاهدین قرار گرفته است. اصلاً به سیاف و امثالش اسلام و جهاد اهمیت ندارد هر جا که ریال و دلار است آنجا سیاف پیش قرابل آن میدان خواهد بود چه خوب گفتند که مذهبی گوش کمان از زمین علفی با خواندری همین مطلب برنامه ما در اینجا به پایان بسید تا جمعه دیگر همه شما را به خداوند یک به همتا می سپاریم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحور السواقي بها الحور يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين ففجر النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين وإن وقفت طغاة أمام درب وإن كادوا بكيدهم المهيني فلن تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجا يقيني وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيدهم المهيني فلن تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجا يقيني